سلام و درود به همه شما شنوندگان خوب و داشتنی کانال هزار افسان. امروز با قصه زیبای سسگ در خدمت شما هستم بریم که با همدیگه بشنویم روزگاری چوپانی با دو فرزندش یک پسر و یک دختر زندگی میکرد در بستر مرگ رو به فرزندانش کرد و گفت من چیزی ندارم که براتون بذارم به سه تا گوسفند و خونه کوچیک اونها رو هر طور که دوست دارید بین خودتون قسمت کنید اما هر کاری میکنید سر اونها دعوا را ناندازید بعد از آنکه چوپان فوت کرد و به سرای باقیش تاافت برادر از خواهرش پرسید چی میخواد گوسفندان یا خونه کوچیک رو دختر خونه کوچیک رو انتخاب کرد برادرش گفت پس من گوسفندان رو بر برمی‌دارم و سر به این جهان بی‌انتهای می‌ذارم و به دنبال بخت خودم می‌گردم. چرا من نباید مثل خیلی‌های دیگه خوشبخت بشم؟ فکر نمی‌کنم به خاطر این باشه که روز یک شنبه به دنیا اومدم. و به این ترتیب پشت سر سه گوسفند سفر خودش رو آغاز کرد. مدت‌های طولانی خبری از بخت خوش نبود. یک روز به چهار چهارراهی رسید. خیلی غمگین و ناراحت بود. گوشهای نشست که یک دفعه سر و کله مردی با سه سگ سیاه یکی بزرگتر از دیگری پیدا شد مرد گفت سلام دوست خوبم میبینم که سه گوسفند چاق و چله داری اگر اونها رو به من بدی سه سگم رو به تو میدم جوان با اونکه خیلی غمگین بود لبخندی زد و جواب داد با این سگا چیکار کنم گوسفندانم دستکم کن برای خودشون غذا پیدا میکنن اما با این حال و روزم باید به فکر غذای هم باشم مرد غریبه گفت سگها مثل دیگر سگ ها نیستند اونها حتی غذای تو را هم تهیه میکنند و با میشند بخت به تو رو کنه کوچکترین سگ نمکی نام داره و هر وقت غذا بخوای برات فراهم میکنه سگ دوم فلفلی نام داره و اگر کسی بخواد بهت آسیب برسونه اون رو از هم خواهد دارید. و نام بزرگترین و ترین سگ خردله. اون اونقدر قویه که حتی آهن یا فولاد رو با دندوناش میشکنه چوپان حرفهای غریبه رو باور کرد و گوسفندانش رو در ازای ها به اون داد اون برای اینکه سر از حقیقت کار در بیاره فورا گفت نمکی من گرسنم قبل از اینکه حرفش تموم بشه سگ ناپدید شد و ظرف چند دقیقه با سبدی پر از خوشمزه‌ترین غذاها پیدا شد جوان به خودش می که چونین ای کرده. پس سرحال و قبراغ به راهش ادامه داد. روزی به کالسکی سیاه و دو اصبه رسید. حتی یراق و افسار اسبا هم سیاه بود و کالسکران هم سر تا پا سیاه بتن داشت. در کالسکه دختری زیبا اون هم کاملا سیاه پوش نشسته بود و به تلخی گریه می کرد. اصبا آیست و غمگین با سرهای فرو افکنده به پیش میرفتند. جوان چوپان پرسید: کالسکران، علت این همه غم و قصه چیه؟ اول کالسکران نمیخواست چیزی بگه، اما با اصرار جوان گفت که اژدهایی بزرگ در همسایگی اونهاست که هر سال باید دختری زیبا براش قربانی کنیم. امسال قرعه به نام دختر پادشاه افتاد و در نتیجه تمام کشور در سوگ و اندوه فرو رفته. چوپان که دلش برای بانوی زیبا خیلی سوخت، تصمیم گرفت که در پی کالسکه بره. کمی بعد به پای کوهی بلند رسیدند. دختر پیاده شد و آهسته و اندوهگین به سمت سرنوشت تلخ خودش رفت. کالسکران دید که چوپان به دنبال شاهدخت برآم افتاده. پس بهش هشدار داد که اگر جونش رو دوست داره، همراه اونها نره. اما چوپان توجهی به حرفاش نکرد. بعد از اینکه نیمی از راه رو بالا رفتند، چشمشون به حیولایی با بدن مار و بالها و چنگالهای تنومند افتاد که به سمتشون میومد از نفسش آتیش در میومد و آماده بود که قربانیش رو پاره کنه چوپان فلفلی رو صدا کرد تا شاهدخت رو نجات بده سگ دوم به طرف اژدهها یورش برد و بعد از نبردی سخت آروارش رو محکم در گردن هیولا فرو برد اژدهها قلتید و افتاد و آخرین نفسهاش رو کشید سگ گوشت رو خورد اما دو دندان جلویش رو باقی گذاشت چوپان اون دو تا دندون رو برداشت و توی جیبش گذاشت ترس و شادی تمام وجود شاهدخت رو فرا گرفته بود و در پای ناجی خودش بیهوش نقش برزمین شد وقتی بهوش اومد از چوپان تقاضا کرد که همراهش به قصر پدرش بره تا هر چه پاداش میخواد بهش بده اما جوان گفت که میخواد چیزهایی را در این جهان ببینه و بعد از سه سال باز خواهد گشت و هیچ چیز نمیتونه تصمیمش رو عوض کنه. شاهدخت در کالسکه نشست. اونها از هم خداحافظی کردند. شاهدخت و چوپان از هم جدا شدند. اولی به قصد برگشت و دومی سر به جهان بزرگ گذاشت. شاهدخت با کالسکه در راه بازگشت بود که موقع عبور از روی پل، یک دفعه کالسکه بی حرکت ایستاد کالسکران رو به شاهدخت کرد و گفت ناجید رفت و احترامی برای بزرگیت قائل نشد این کمال لطفت خواهد بود اگر به شخص بیچاره کمک کنی و خوشحالش کنی میتونی به پدرت بگی که اژدها رو من کشتم اگر این کارو نکنی تو رو به رودخونه میندازم هیچ کس هم گمان بد نمیبره چون همه فکر میکنن اجدها تو رو دریده دوشیزه زیبا در بد وضعیتی قرار گرفت اما چاره ای نداشت، پس قسم خورد که کالسکران رو به عنوان ناجی خودش معرفی کنه و این راز رو در دل خودش پنهان نگه داره. بعد به شهر برگشتند. وقتی همه دیدند که شاهدوغ سالم و تندرست به شهر برگشته، خیلی خوشحال شدند. پرچمهای سیاه از روی تمامی برجای قصر پایین کشیده شد و به جاشون پرچمهای رنگی برافراشتند. پادشاه در حالی که از شادی اشک میریخت، دخترش همچنین نجات دروغین فرزندش رو هم در آغوش گرفت و بهش گفت تو نه فقط زندگی فرزندم رو نجات دادی بلکه کشور رو از این بلایی حراسنگیز رهانیدی پس سزاوار پاداشی عظیم هستی. بنابراین دخترم رو به هم سرید در میارم. فقط اون هنوز خیلی جوانه. بگذار امسال به پایان برسه و مراسم عروسی سال آینده برپا بشه. کالسکران از بزرگواری و بخشندگی پادشاه تشکر کرد. اون از پیش پادشاه رفت تا لباسهای عالی بپوشه. به دستور پادشاه مقرر شد همه ی هنرها و رسوم شایسته رو بهش یاد بدن تا ظاهری کاملا برازنده همسری شاهدخت پیدا کنه. شاهدخت بیچاره به تلخی غری میکرد و نمی‌تونست درباره علت غم و اندوهش به کسی چیزی بگه. وقتی سال به پایان رسید، سخت التماس کرد که یک سال دیگه هم مراسم رو به تأخیر بندازن. تقاضاش پذیرفته شد. سال دوم هم گذشت و مهلت به پایان رسید. اون یک بار دیگه خودش را به پاهای پدر انداخت و آجزان تقاضا کرد که یک سال دیگه هم به اون فرصت داده بشه. قلب پادشاه به درد اومد و تقاضای دخترش رو برآورده کرد. این مسئله باعث خوشحالی دختر شد. چون میدونست که نجات دهنده واقعیش در پایان سال سوم پیشش میاد. اون سال هم مثل دو سال دیگه به پایان رسید و روز عروسی تعین شد. همه مردم خودشون رو برای شرکت در جشن عروسی و شادی و سرور آماده میکردند. روز عروسی سرکله قریبهی با سه سگ سیاه در شهر پیدا شد. اون پرسید که اون همه شادی و حیاغو برای چیه؟ بهش گفتند که امروز دختر پادشاه با مردی که اون رو از چنگ اجده های نجات داده پیوند میبنده. قریبه فوراً فریاد زد که کالسکران دروغ میگه اما کسی به حرفاش گوش نکرد. اون رو دستگیر کردند و به زندانی با درهای آهنی انداختند در مدتی که روی بستر حسیری در زندان دراز کشیده بود با اندوه زیاد به سرنوشت خودش فکر میکرد. یک دفعه صدای او اوی سگاش رو از بیرون شنید. فکری به مغزش خطور کرد. اون با صدای بلند خردر رو صدا کرد تا به کمکش بیاد. ظرف یک ثانیه صدای پنجه های بزرگترین سگش رو در پشت پنجره زندان شنید. در کمتر از چند ثانیه سگ میله های آهنی رو از هم درید و در کنارش ایستاد. هر دو از پنجره زندان بیرون رفتند. جوان بیچاره یک بار دیگه آزاد شد. اما از اینکه که میدید شخص دیگری پاداشی رو که به اون تعلق داشت به ناحق از آن خودش کرده خیلی غمگین بود. گرست بود. پس سگ کوچیکش نمکی رو صدا کرد تا به قصد بره و براش غذا بیاره. موجود با وفا شتابان دور شد و خیلی زود با یک دستمال سفره پر از خوشمزه ترین غذاها برگشت. دستمال سفره به نحوه شاهانه گلدوزی شده بود. پادشاه به همراه درباریان تازه پشت میز غذا نشسته بود که سگ به اونجا اومد و با حالتی التماس‌آمیز شروع کرد به لیسیدن دست دختر پادشاه. شاهدخت با خوشحالی فریاد کشید چون سگ رو شناخت و دستمال صفرش رو به گردن سگ بست. بعد به خودش دل و جرعت داد و تمام داستان نجاتش رو برای پدرش تعریف کرد. پادشاه یکی از رو دنبال سگ و صاحبش فرستاد. کمی بعد غریبه رو به حضور پادشاه آوردند. همین که چشم کالسکران به جوان چوپان افتاد رنگ به چهرش نموند و مثل گچ سفید شد. اون خودش رو به پاهای جوان انداخت و از اون تقاضای بخشش کرد. شاهدخت چوپان جوان رو که نجات واقعیش بود شناخت. دیگه نیازی به نشون دادن دندانهای اجدهان نبود. کالسکران رو به سیاهچال انداختن و چوپان به جاش در کنار شاهدخت نشست. مطمئن باشید که شاهدخت این دفعه اصلا دلش نمیخواست مراسم ازدواج عقب بیفته. زوج جوان با آرامش و خوشبختی مدت زمانی در کنار هم زندگی کردند. تا اینکه یک روز چوپان قصه ما به یاد خواهرش افتاد و گفت که دلش میخواد اون رو ببینه و اون رو در بخت خوشش شریک کنه پس کالسکهای براش فرستادند و خیلی زود اون رو به قصر آوردند خواهر و برادر همدیگر رو در آغوش گرفتند همون موقع یکی از سگها زبان باز کرد و گفت خوب کار ما تموم شده تو دیگه به ما نیازی نداری ما میخواستیم ببینیم حالا که بخت به تو رو کرده خوهرت رو فراموش نکرده باشی، حالا خیالمون راحت شد و با این حرف ها هر سه سگ به سه پرنده تبدیل شدند و به سمت آسمان پرواز کردند. امیدوارم از این قصه زیبا هم لذت برده باشید و روز و روزگار بر شما خوش. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها